مصنوی معنوی مولوی برنامه بیست باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و اقوبت ایشان هم در دنیا با چاه بابل چون گناه و فسق خلقان جهان می شودی بر هر دور روشن آن زمان دست گرفتندی ز خشم لیک عایب خود ندیدندی با چشم. خیش در آی ندید آن زشت مرد، رو بگردانید از آن و خشم کرد. خیش بین چون از کسی جرم بدید، آتش دروی زدوزخ شد پدید. همیت دین خاند و آن که را، ننگرد در خیش نفس گعب را همیت دین را نشان دیگر است که از آن آتش جهان اغزر است گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیاه کاران مغفل من گرید شکر گوید ای سپاه و چاکران، رستید از شهبت و از چاکران گرزان معنی نه من بر شما، مر شما را بیش نبزیرت سما اسمت که مر شما را در تن است، آن ز اکس اسمت و حفظ من است آن زمان بینید نسخد هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول. خیش را همساوت مرغان خدا می شمرد آن بود سفیر چون صدا، لحن مرغان را اگر واصف شوی بر مراد مرغ کی واقف شوی گربی آموزی سفیر بلبلی تو چدانی کو چه دارد با گله بر بدانی باشد آن هم از گمان چون زلب جنبان گمانهای کران با ایادت رفتن کار بر همسایه رنجور خیش آن کری را گفت افزون مایه که را رنجور شد همسایه گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفت آن جوان خاصه رنجور و ضعیف آواز شد لیک باید رفت آنجا نیست باد چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاس گیرمان را هم ز خود. چون بگویم چونی ای مهنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم من بگویم شکر چه خوردی عبا او بگوید شربت یا ماشبا من بگویم سه نوشت کیستان از طبیبان پیش تو گوید فلان من بگویم بس مبارک پاست او چون که او آمد شود کارت نکو پای او را آزمود استیم ما هر کجا شد می شود حاجت روا این جوابات قیاسی راست کرد پیش آن رنجور شد آن نیک مرد گفت چونی؟ گفت مردم، گفت شکر شد از این رنجور پر آزار و ناکر کین چه کی شکر است؟ او مگر با ما بد است کر قیاسه کرد و آن کش آمده است بعد از آن گفتش چه خوردی گفت زر گفت نوشد باد افزون گشت قر بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همه آید به چاره پیش تو گفت اسرائیل میآید برو گفت پایش بس مبارک، شاد شو کر برون آمد، بگفتو شادمان شاکر کش کردم مراعات این زمان گفت رنجور، این عدوی جان ماست ما ندانستیم کو کان جفاست خاطر رنجور جویان شد سقط تا که پیغامش کند از هر نمد چون کسی که خورده باشد آشب بد می بشوراند دلش تا قی کند کزم غیزین است آن را قی مکن تا بیابی در جزا شیرین سخن چون نبودش صبر می پیچید او کین سگه زن روز بی هیز کو تا بریزم برویان چه گفته بود. کان زمان شعر زمیرم خفته بود. چون ایادت بهر دل آرامی است این ایادت نیست دشمن کامی است. تا ببیند دشمن خود را نزار تا بگیرد خاطر زشتش قرار. بس کسان که اشان زتاعت دل بر رزوان و سوا به آن دهند. خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس کدر گان را تو پنداری صفی. همچون کر کو همی پنداشت است، کو نکویی کرد و آن برعکس جست. او نشسته خوش که خدمت کردم. حق همسایه بجا آوردم. بهر خود او آتش افروخته است. در دل رنجور و خود را سوخت است. فتق النار او قطمو. اینکم فلم اسیه ازددتمو. گفت پیغمبر به یک صاحب ریا، سل این لم تو سل یافتا از برای چاره این خوفها آمدن در هر نماز اهدنا که نمازم را میا میز ای خدا با نماز زالین و ریا از قیاسی که بکردان گزین صحبت ده ساله باطل شد بدین خاسای خاجه قیاس حس دون، اندران وحیی که هست از حد فزون، گوش حس تو به هر فر خوره است، دان که گوش غیب گیر تو کرست. اول کسی که در مقابله نس قیاسا آورد، ابلیس بود اولان کس که این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود گفت نار از خاک بیشک بهتر است من ز نار و اوز خاک اکدر است پس قیاس فر بر اصلش کنیم اوز ظلمت ما ز نور روشنیم گفت حق نه بلکه لا انصاب شد زهد و تقوا فضل را مهراب شد این نه میراس جهان فانی است که به انصابش بیابی جانی است بلکه این میراس های انبیاست وارث این جانهای های اتقیاست پور آن جهل شد مؤمن ایان، پور آن نوه نبی از گمرهان زاده خاکی منور شد چماه زاده آتش توی رو روسیاه این قیاسات و تحری روز عبر یا به شب مرقبله را کرده است حبر لیک با خورشید و کعبه پیشرو این قیاس و این تحری را مجو کبه نادیده مکن روز و متاب از قیاس الله و عالم به سواب چون سفیر بشنوی از مرغ حق ظاهرش را یادگیری چون سبق وانگهی از خود قیاسات کنی مر خیال محض را ذاته کنی استلاحات است مر عبدال را که نباشد زن خبر اقوال را منطق تیری با سوت آموختی صد قیاس و صد هوس افروختی آن رنجور دلها از تو خست کر به پندار اصابت گشتم است کاتب آن وحی زن آباز مرغ برده زن کو بود همباز مرغ مرغ پر زدمر او را کور کرد نک فرو بردهش به قعر مرگ و درد هین به عکس یا به زن هم شما در می افتید از مقامات سما گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه بربام نحن و صافون بربدی های بدان رحمت کنید برمنی و خیشبینی کم تنید هین مبادا غیرت آید از کمین سرنگون افتید در قعر زمین هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست به امان تو امان خود کجاست این همه گفتند و دلشان می تپید بد کجا آید زمان ملعبید؟ خار خار دو فرشته هم نهشت تا که تخم خیش بینی را نکشت پس همه گفتند که ارکانیان بی خبر از پاکی روحانیان ما بر این گردون توتقها میتنیم بر زمین شاد شادروان زنیم عادل توزیم و عبادت آوریم باز هر شب سوی گردون برپریم تا شویم او دور زمان تا نهیم اندر زمین امن و امان آن قیاس حال گردون بر زمین راست ناید فرق دارد در کمین در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان بشنو الفاظ حکیم پردهی سر همان جا نه که باده خورده چونکه از می خانه مست زال شد تسخر و بازی اطفال شد می فتت او سو سو بر هر ره در گلو می خنددش هر ابله. او چونین و کودکان اندر پایش بی خبر از مستی و زوق میش خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا گفت دنیا لیب و لحوست و شما کودکی دو راست فرماید خدا از لعب بیرون نرفتی کودکی به زکات روح کی باشد زکی چون جماع تفل دن این شهوتی که همهرانند اینجا ای فتی آن جماع تفل چه بود بازیه با جماع رستمی و غازیه جنگ خلقان همچو جنگ کودکان جمله معنی و بیمغز و مهان جمله با شمشیر چوبین جنگشان جمله در لاینفعی آهنگشان شان جمله شان گشته سواره برنهیه کین براق ماست یا دلدل دل حاملند و خود ز جهل افراشته راکب و محمول ره پنداشته باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان بگذرند از نه طبق تعرج اروج الروح الیه و الملک من اروج الروح یهتز الفلک همچو تفلان جملتان دامن سوار گوشه دامن گرفته اسب وار از حق نزن لا یغنا رسید مرکب زن بر فلک ها کیدوید. اغلب و زنین فی ترجه زا لاتمار شمس فی توضیح ها. آنگهی بینید مرکب های خیش مرکب سازیده اید از پای خیش وهم و فکر و حس و ادراک شما همچونهی دان مرکب کودک حلا. علم های اهل دل هم مالشان، علم های اهل تن احمالشان علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود گفتی زد یحمل و هو بار باشد علم کان نبود زهو علم کان نبود زهو بی واسطه آن نپاید همچو رنگ ماشته لیک چون این بار را نیکو کشی بار برگیرند و بخشندت خوشی هین مکش بحر هوا آن بار علم تا ببینی در درون انبار علم تا که بر علم علمایی سوار بعد از آن افتد را از دوش بار از هواها كی رهی بی جام هو عیزهو قانه شده با نام هو از صفت و از نام چه زاید؟ خیال وان خیالش هست دلال وثال دیدهی دلال بی مدلول هیچ تا نباشد جاده نبود غول هیچ هیچ نامی به حقیقت دیدی یا ز و لام گل گل چیده ای اسم خواندی را مسمار را به جو مه به بالادان نه در آب جو گر ز نام و حرف خواهی بگذری پاک کن خود را از خود هین یک سری. همچه آهن زاهنی بی رنگ شو. در ریاضت آینه بیزنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی در دل علوم انبیا به کتاب و به معید و اوستا. گفت پیغمبر که هست از امتم کو هم گوهر و هم حمتم مرمرا زان نور بیند جانشان که منشان را همه بینم بدان بی سهی هین و احادیس و روات بلکه اندر مشرب آب حیات سر امسینا سینا لکردیان بدان راز اصبحنا عربیان بخان وار مثالی خواهی از علم نهان قصه گو از رومیان و چینیان قصه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری چینیان گفتند ما نقاشتر رومیان گفتند ما را کر و فر گفت سلطان امتحان خواهم در این از شماها کیست در دعوی گزین. اهل چین و روم چون حاضر شدند رومیان از بحث در مکس آمدند. چینیان گفتند: یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در بدر، زان یکی چینی ستود رومی دگر. چینیان صد رنگ از شهر خواستند. پس خزینه باز کرد آن ارجمند. هر سباه از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ در فرو بستند و سیقل می زدند همچو گردون ساده و صافی شدند از دو سد رنگی به بیرنگی رهیست رنگ چون عبر است و بیرنگی مهیست هرچه اندر ابر زو و تاب آن ز اختر دان و ماه و آفتاب چینیان چون از عمل فارغ شدند از پای شادی دهلها می زدند شهر درآمد دید آنجا نقشها می ره بود آن عقل را و فهم را بعد از آن آمد به سوی رومیان پردرا بالا کشیدند از میان عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر صافی شده دیوارها هرچه آنجا دید اینجا بهنمود. نمود دیده را از دیدخانه می ربود رومیان آن سوفیانند ای پدر بیز تکرار و کتاب و بهانر لیگ سیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، کو نقوش به عدد را قابل است. صورت بی صورت به حد غیب، زاینه دل تافت بر موسا جیب گرچه آن صورت نگنجد در فلک نه به عرش و فرش و دریا و سمک زان که محدود است و معدود است آن آینه دل را نباشد حد بدان عقل اینجا ساکت آمد یا مزل زان که دل با اوست یا خود اوست دل اکس هر نقش نتابد تا عبد جز دل هم با عدد هم بی عدد تا ابد هر نقش نو کاید برو می نماید بی اندرو اهل سیقل رستند از بوی و رنگ هر دم بینند خوبی بی درنگ نقش و قشر علم را بگذاشتند. رایت اینال افراشتند رفت فکر و روشنایی یافتند نهر و بهر آشنایی یافتند مرگ کین جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریش خند کس نیابد بر دل ایشان زفر بر صدف آیت زرر نی برگوهر گرچه نه و فق را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند تا نقوش هشت جنت تافت است لوح دلشان را پذیرا یافته است برترند از عرش و کرسی و خلا ساکنان مقعد صدق خدا برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهر باز ایرج تهیه و اجرا کردن